راژیو فیلم روبان قرمز بازیگران پرویز پرسوی خب تعریف کن از خودت از خونت از شوهرت رضا کیانیان اومده بوده قبرستون دربرسون تانک، تانک قیمت کردی. آزیتا حاجیان. کجا میری؟, کجا میری؟ لعنه... موسیقی محمد رزا علی غلی، تهیه کننده شرکت ورا هنر. نویسنده و کارگردان ابراهیم هاتمی کیا وانتباری از دور دیده میشه. به پست نزدیک میشه. پیش از اون که لاک پست له کنه، ترمز شدیدی میکنه. لاک اما به راه خودش ادامه میده. در نمای دور زن جوانی با شکم برامده و لباس محلی جنوبی چمدان قرمزی در دست از وانتبار پیاده میشه. ماشین میره و در دور دست خاک زیادی بلند میشه. زن در این مزرعه دور افتاده تنهاست. به اطراف نظری میندازه و بعد راه میفته. به جای میرسه که با دو ردیف روبان قرمز معبری ساخته شده تا چیزی رو مشخص کنه. وارد معبد میشه. بوته خاره اینجاز از روش میپره همچون دخترکان لیلی کنان به راهش ادامه میده چمدان قرمز رو روی سرش گرفته به حالت شش ششخونه بازی بگه به زمین میفته چمدان از دستش رها شده از محدوده روبان قرمز خارج میشه روی زمین خاکی قیل میخوره تا اینکه روی زمینی میفته و زن نگران به پاره های معلق چمدان و لباساش که به زمین میفته نگاه میکنه روسری سفیدی آرام نزدیک زن روی ربان قرمز میافته. در همین موقع مردی با مو و ریش بلند به اون نزدیک میشه. زن ترسیده. شما؟ سلام. والا. کجا برم؟ خونت. خونم همینجاست اومدم خونم. اینجا خونته؟ بله. زود اومدی. وقتش که شد خبرت میکنه اوهای اقا کاشی سرزندختی داری پر همطور میری میدونی اینجا میکاشتم غلط کردن که کاشتن از که چیز دیگرفته بودن اینجا زمین ماست هرچی خودمون بخویم بدم میکن برو برو به شوارت بگو بیخوت تو برو بربابت بگو بیاد ببینم اصلا تو زمین ما چی میکنی؟ میکنیم بایستا اینجا ماز راهی بابامه. اجدش که دلم هم میخاد تو میدونی می چی؟ همونی که بیای جزء کشتی نیگه. مرد از روی زمین سنگی برداشته پرتاب میکنه. در دور دست سنگ روی زمین میافته و من نخواستم اش. برو. می ترساند گنیت. آرمان شود خبرت بیکن. هی کار دست را گرفت می ترسم. چطو ماردمه سکتورم میبرم لابهشا تو تشتمار میگردم کی روزی می منو برنمیگردی تیفونه خودت رو کسو کارت خدا تو کارت از رو زمین مرد با عصبانیت روبانهای قرمز و رو باز میکنه و میره زن بی اعتنا و کمی عصبی به طرف چادری که در پس زمینه دیده میشه میره مرد مشغول بازسازی معبر تخریب شده میشه روی زمین همون لادپشت رو میبینی برش میداره و اونو مورد خطاب قرار میده تو هم سر گوشت میشون به این از کدوم جنم در پیدا کردی؟ ها <تصفيق> زن به دروازهی با دری چوبی میرسه میسته روبنده خودشو کنار میزنه و با حسرت به خونه که نگاه میکنه به سمت در چوبی میره. تکونش میده دوان دوان به بخشی از دیوار که تخریب شده میرسه بخشی از دیوار با گونیهای سنگر پوشونده شده از دیوار به زحمت رد میشه و وارد خونه قدیمی میشه از درختی با خوشحالی بالا میره از پله های نیمه خراب خونه بالا میره وارد ساختمونی میشه همه جا خراب شده وسایل کهنه و فرسوده رو جا نعنوی رو پیدا میکنه تکونش میده پنکه سقفی آویزون به تیرکی در باد میچرخه زن در نعنو زیر پنکه می بوی خاطره ای رو در ذهن زنده میکنه چشماش نمناک میشه نعنو در حرکت زن در خرابه زیر آسمون شب در کنار فانوس ها و دیگر وسایل فرسوده دراز کشیده و زمزمه ای میکنه این همه ستاره بس من این همه را آمدن بخطر همه خونه یه خون خربه برام برسون صدای ریزش خاکی از دورتر توجهشو جلب میکنه زن نگران فانوسو برمیداره نگاه میکنه. موشی به درون لانش میره زن جارو دستی برداشته به سمت لونه موش میره خاک دم لونه رو کنار میزنه به لوله میرسه سنگی درون اون میندازه خالیه. وسایل روی لوله رو جابجا به جا میکن در پنجره شکسته حسیرهای تک پاره و وسایل دیگه لوله لوله تانکی زیر خاک میکنه ناگهان اغربی دست زن و نیش میزنه ترسان از خونه خارج شده وارد معبر روبان قرمز میشه به جایی میرسه که روبانی دیده نمیشه روبان اینجا که روبان داشت آهای آهای آقا آهای آهای آقا اینجا اقرام زده سم اقرام زده سمون اینجا زده چرا که بود؟ میسوزه؟ آخر خیلی میسوزه خوابت نمیاد خوابه نه مگه کجا میری؟ من منم بسد کجا میری لعنت؟ چی؟ میگم به خدا نمیخواستم مزرعتون بشم. اخسیر خودم بود. مرد منوری شلیک میکنه که تاریکی شب رو روشن میکنه. ای مرد دوباره به سمت چادر برمیگردد. ها اگر عقرب باشه چی میشه؟ میترسه میکشه؟ منم تروردار تا جیت کارم انجام چ... میکشه؟ پس آبیر خوابم چی؟ من قرار نیست بیام. زن دست زخمی خودشو برلوسریش با آن نمیام. آبیر نمیاد. من سفید باخ میشم خودم میدونم. منو میبینی؟ حالا حالا کار دارم. یانات من چطور رفت دلمی چی میگی؟ حرف بزن. حرف, حرف دیگه. چه رفتم اسد؟ بگو درست راستش همردم بولان مرد بزن. در کلاه خودش آتشی ما میکنه می‌کنه و می‌خواد مانع خوابیدن زن بشه. خوابیده بودم. نه یعنی جای اندخته بودم که بخوابم. برام تکرار. یه دفعه صدای خشخش اومد. پا شدم یه لوله پیدا کردم. دور لوله رو که خالی کردم یه تانک زد بیرون. میفهمی یه تانک پیدا کردم. آره. یه تانک پیدا کردی؟ باشه تانکه ولی خودمه تانکه ولی خودمه دیگه ها چی میگم تانکی که بده کردم ولی خودمه دیگه آره قشنگ میتونی بسوی بندری تاک خونه خوند خوابم میاد خستا. خسته اونم بدهشینی جایی نمیخوام برم که همینجا باشم تو خسته نه ببینی اون مشغول چیدن سیم های خاردار مم. میشه الان تموم میشه یه دقیقه دندورو چیکار بسور خوب تعریف کن از خودت، از خونت، از شوهرت، از بابات چرا رفتی، چرا اومدی؟ بگو حفظاً، اونطوری خوابت برمیافتی دیمی تک که دکه میشی خواب دیدم بچه شدم برگشتم خونم یک گنج پیدا کردم زن بی حال نزدی یک مین نوته روی زمین مرد دوباره منول میزنه از روشنای اون استفاده میکنه و خودشو به زن میرسه بعد آغاز شد زن تکانی میخوره و بیدار میشه خودشو روی زمین در کنار قوطی‌های کنسرو قمقم چندین مین خنسا شده می‌بینه مرد در کنار روبان‌های قرمز با پارچه‌ای قرمز سایبونی برای اون ساخته تا آفتاب به اون گزندی نرسونه زن بلند میشه و مرد رو مشغول کشیدن روبان‌های قرمز جدید در جای دیگه می‌بینه مرد چمدان تکه تکه شده اونو با های قرمز بسته و سرهم هم کرده زن چمدونو بر میداره چند قدمی میره و بر میداره کیسه کنسرها قمقمه و چمیدونو بر میداره و به سمت خونه قدیمی خودش راه میفته با سنگی قصد داره در کنسر باز کنه نمیشه از قاشقی مدد میگیره باز هم نمیشه ناامید نشسته. به لوله تانک چشم میدوزه و تکنان خشکی سق میزنه برقی در چشمانش دیده میشه بلند شده وسایل خاک گرفته روی تانک رو بر خسته در گوشه نشسته به تانک نگاه میکن دوباره دست به کار میشه این بار تمام وسایل رو برمی داره و تانک نمایان میشه دور تانک میچرخه قدیمی که هنوز به تانک تکیه داده شده رو روی زمین میدازه درش رو باز میکنه لباس های کهنه رو میبینه آینه اون سالمه و خودش رو خود آینه نگاه اکسی قدیمی از دوران کودکیش میبینه و تک تک آدم ها رو نام عکسی از خودش هم میبینه و عشقی میریزه و نام خودش رو خانم پاک میبره. وانتبار در جاده در حال حرکت محبوبه پشت اون سوار تانک ها و ماشین های فرسوده زمان جنگ رو در کنار جاده میگن بر اتاق که وانت میزنه تا پیاده بشه محبوبه در بین امروحی از تانک ها قدم میزنه و اونها رو نگاه میکنه به زنجیر یکی دست میکشه لوله یکی دیگر رو تکون میده در این اصناع مردی رو میبینه که از بین تانکها ها رد شد لحظه میمونه ترسیده اطراف و نگاه میکنه قصد رفتن میکنه اونو میبینیم که از بین تانکها ها رد میشه میدوه خسته میسته باز هم سایه یک مرد در بین تانکها. دوباره میدوه ناگهان مردی افغانی با سگ سیاهش جلوی راه اون سبز میشه. قایق نمی‌فهمه. خب من هم با شما صحبت میکنم. این دارنده اشتباهی منو اینجا پیاده کرد. مجبور شدم بیراهه بیام. بیراهه. بله. از کجا میای؟ گفتم که این دارنده اشتباهه. کجاست؟ خب این طرفه، پشت اون کوه. کجا؟ رازقی شاد، ابو موسی، ملاش، سعد. آ، سعد. اینجا رو خوش می‌رسی. بیا. زنبلا بیا. مرد افغانی‌ها سگ می‌رن و محبوبه به دنبال اون. کابولی تو کشورتون چه خبره؟ هنوزم جنگه. اینجا چیکار می کنی؟ شدی شد مرد عصبی میست. من اجازه دارم این سگ اززم به جونت. ما اینکه حرف بدی نزدم. منم آواره بودم. درد بیبتتون این خوب میفهمم. یه سال دارم؟ بهم جواب میدی؟ به پرس؟ ها خواستم ببینم این تانکا. مالی شما هست؟ خواه میده مالی شما نیست خریداری؟ ما؟ آره، آره، چند؟ کدوم؟ مثلاً این چند؟ یک میلیون یک میلیون؟ این کار ازه؟ اگه سالم بود چند؟ صد میلیون من تو رو تو قریای اطراف ندیدم تو خونه پدرم زندگی میکنم، مزرای خودم. خودممادر. یه جای همین دوره برا دیگه. تو کجایی هستی؟ مال مللشم پشت همین کو. اونجا کی پکسازی نشده؟ چی سازی نشده؟ پر از mine. درسته. مرد افغانی دوباره حرکت کرده بین تانک تانک‌ها میره و باز هم محبوب دنبال اون. یعنی من اونجا. زن داوودی؟ زن کی؟ داوود. تو چرا به من دروغ میگی؟ من دروغ نمیگم. تو اونجا نیستی. چرا هستم؟ ولی زن اون نیست. دنبال من مگه بره خونت. این برو. مرد با سگش به سمت اتاقکی میره و محبوبه باز هم به دنبال اون مرد وارد اتاقک خودش میشه پردر رو کنار میزنه و رفتن محبوبه رو نگاه میکنه لامپ سخف رو شل میکنه تا خاموش بشه در صندوقچه رو باز میکنه عکس زنی داخل اون هست مرد افغانی روی تخت میشینه و عکس رو نظاره میکنه کتاب روی تخت و ساز دستساز حلبی خودشو رو برمیداره تا استراحت کنه محبوبه در بیابان نفذ زنان راه میداره. در دوردست وانتیو میبینه که مردی از اون پیاده شده در کنار درختی چیزی رو روی زمین میذاره سوار میشه و میره محبوبه سریع خودش رو به درخت میرس یک کارتون خوراکی و چند زرف میبانه در یکی از اونها رو باز میکنه بو میکنه آب میخوره کارتون برسر و ظرف آب در دست نزد داود بر می گرده. داود مشغول کندن گودالیه محبوب وارد معبر با روبان قرمز میشه و به طرف داود میره سلام داشتم این یه رو براتون می بردم شماست دیگه ها؟ دستم خوب شده گفتم بیام یه تشکری از شما بکنم دورش کجا ببرم از جورا چشمه ما مگه مال شما نیست؟ حالا مال تو برو ای آقا با کی داری حرف میزنه؟ جسد کسی اینجاست؟ دیگه چی میخوای؟ بگو خجالت نکش احترام خودتو نگه دارا داری تو اومد میزنی؟ یعنی من تو زمین خودم مرد استرامه من چه مسیتی کردم که تو باید نصیب من بشی؟ نصیب تو؟ محبوب کارتون خوراکی رو پرد میکنه تو کی هستی؟ یه پشمالو خود تو تو آینه دیدی؟ اصلا آینه داری ببینی؟ بی, بی حیات تویی که تو زمینه من به تو تهمت میزنی من بگو که گفتم بیام جواب خوبیه اینو بدم بکره ای تو نبودی خوشی در میمار برا برو. از جور چشم دور شو برو عبر سیاه برای امام دیگه پیدا کن من اگه تا قدم داق بشه دیگه زنمار سرم نمیشه پرتت میکنم وسط این دونه آفرین آفرین داود قا زن اینو میگه و میره اسمامو کمت گفته محبوبه دوباره به داوود نزدیک میشه گفتم تو چی هستی من محبوبم دختر یه دونه صاحبه همین زمین چی تی... کسی که این زمینو میشتردم. تو باید بگی چی هستی م بگی خدا من یه دیوونه ای که تو براهوت خدا و خودش حرف میزنه یه مردی که نمیدونه دونه چجوری با یه زن حرف میزنه دارم ریاست می دارم بیلو برداشته لگدی به کارتون خوراکی میزنه و خاکها رو درون گودال کنده شده میریزه کنان گنج خیالات رو راحت کن. توی این زمین زیر خاکی نداره داوود به محبوب حمله میکنه و بیل رو از اون میگیره داوود خوب شناختی حالا یکم از مادمازل بگو با این شکمه برآمده توی این بیابونه برهود چه خلصی میکنم؟ اینجا خونه شه خونه باباشه خونه باید تو این حرفاره چه میفهمی؟ من که سر کله هیچ مردی پیدا نشه تو از کجا پیدا شد ای جانم حرمت نوشتمش رو یاد اگه تو این وصیت داده بودی گوشت میگرفتم و پرت میکردم میرم تو را آره؟ من جرأتشو داری امطونم نگم یادت باشه محبوبه طاعت. کمی از داوود فاصله گرفت از زیر لباسش بغچه ای بیرون آورده به سمت داوود پرت میکنه بگیر. بچه ای در کار نبوده تو استفاده کن داود حیران به بغچه و رفتن محبوب نگاه میکنه بعد از کمی بغچه رو پرت میکنه و محبوب سراسیمه خودش رو به داوود میرسونه گودال پر خاک شده و پرهای زیادی در هوا معلقه داود در گودال نشسته محبوب بالای گودال زانو میزنه به هم نگاه میکنن بچا ظرفو داوود با گردنبندی بندی که قاب کوچکی به اون آویزونه و عکس محبوبه توی اونه و به سیمهای خاردار آویزون شده بازی میکنه محبوبه در خونه قدیمی در کنار تانک با تور سفید سوراخ سوراخ شده ای بازی میکنه و اون را سر میکنه با خودش حرف میزنه خوشگل شدم فقط همین برای مونده ناگهان باران میرون داوود اما در چادر خودش برای خودش آواز میخوند لیکش داری یه محبوبه به دنبال سرپناهی سعی میکنه در تانک رو باز کنه. بالاخره موفق میشه. به سختی وارد تانک میشه. باران همچنان می داوود با چفئی برسر و کیسه برفیش نزدیک خانه قدیمی میسته، آشنی میشه، ناامید برمیگرده، اما باز به سوی، اما باز به سوی خونه میره، این حرکت اون چندین بار تکرار. همین موقع محبوبه با فانوسی روشن درون تانک ناگهان جمجمه اسکلتی رو میبینه فانوس از دستش رها میشه در تاریک روشن برق آسمان باز هم اسکلت رو میبینه بی هدف در تانک این سو آن سو میره سرش به جای میخوره و بیهوش برزبه شده. صدای نالان محبوبه از لوله تانک شنیده میشه کمک کنی کمک کمکی نیست محبوبه گیج با زنجیرهای آویزون تانک بازی میکنه موشی رو می بینه دوباره چشمش به جمجمه میفته در روشنایی اندک روز این بار بهتر دیده میشه با اون حرف میزنه ترکی دعوتت کرده اینجا هی میتونستم اختمورت رو خالص یه کیف جیبی در کف تانک پیدا میکنه. این کیف پر از عکس ظاهراً مال همون جمجمه است که روزی سربازی اراقی بوده با خودش حرف میزنه. زنه اماده بودم کنم اگه قراره بمیرم دلم جنازم کنار این انفجار محیبی در بیرون صورت می گیره. بعد از فرو افتادن آتش داوود روی زمین میبینیم باز هم مینی منفجر شده داوود لاک پشت روی زمین در حرکت میبینه که تکه از مین شعلهور بر پشتش افتاده به سرعت به سمتش میره اونو بر میداره و مخاطب خودش قرار میده جده خودت خواستی اینم هم نتیجهش و را شدی؟ همین همینه دیگه هم خودت میدی هم منو. برو لاک پشتو... زمین میذاره باز هم شبی در بیابان محبوب هنوز توی تانک بی بیحاله عروسی و رقصی محلی رو تصور میکنه در خیال خودش عروسی با داوود جوان رو در لباسی شیک میبینه این بار عروسی با مرد افغانی جوان رو تصور میکنه بار دیگه عروسی با داوود با شمایلی شبیه یک بازاری مرد افغانی به شکل یک مرد لات باز هم مرد افغانی پیر در حیعت یک ملا داوود در سن 60 سالگی مرد افغانی در قالب یک نظامی پیر داوود در سن 70-80 سالگی از این تصورات به گریه میافتید. فهمیدم. و روزی دیگه در تان مادرشو در خیال میبینه که در تانکو باز میکنه مادر به سوی محبوب دست دراز میکنه و محبوب دستشو می‌گیره. مادر کوزه آب برای محبوب میاره و اون آب میخوره پیش بده پیش بده که پیش بده. بناگاه وارد دنیای واقعی میشیم که مرد افغانی در همون خونه قدیمی به محبوب آب میده و محبوب گیج آب میخوره به صورت محبوب آب میپاشه دیگه تشنگی ندست چنگاخونت بودی می جا جاپن کنم استراحت کنی منو میشناسی اومده بودی قبرستون قبرستون تانک تانک قیمت کردی حمله بودی من یادمه مرد جلوی صورت دستش دستشو به هم میزنه تا از اون حالت گیجی خارج بشه گریه دواست <تصفيق> مرد افغانی تیز و چالاک از تانک بالا میره و درون اونو نگاه تاکنی پایین میاد. من قبلا این خونه اومده بودم. باری کیف بک میکرد. زیری همچین نواری، همچین تاکنی سالم می باشه. حالوی تو. خواب هر کسیه تو شما وقتی کسی بهتون کمک کنه، اینجوری ازش تشکر میکنین. من داشتم میافتان بیش از مادر. کجاست مادرت؟ اون دنیا. خب ولی من به داده بسیدم وظیفه واسه چی؟ بخور، ضعیف شدی یه زن اینجا تنها بود آمدی نخیل داود اقا گفت این نان آبو برای شما بیارم دو روز خیلی نگران مال شماست؟ اینا از کجا پیدا کردی؟ اون گفت بدم شما اگر جای شما بودم گردم بند میدادم جمعه جمعه کی؟ بنده محبوب خانم محبوب خانم درست گفتم؟ بانوی صاحب تانک اومده بودی همینو بفرشی درسته؟ حق داشتی؟ این تانک به خونه شما تجاوز کرده قنیمتیم هم باشه قنیمت شماست خیلی دیمتی خیلی گنجه وقتی شما را از تانک بالا کشیدم دیدم یه عروس بیرون میارم یه روزگاری جمعه افسر تانک. آرزو داشت تانکشو پر از گل کنه و با همین تانک رو ببره خانه بخت خدا اون سگ دیگه قلاده نداره چه اون حالش خوبه بهتر از من توی زنده است سالم چی شده؟ اون که زن نیست گراز وحشیه خب حرف بزن، چی شده؟ آخه چرا گذاشتی بیاد اینجا؟ داستان داره دلم سوخت. برای کی دلت سوخت؟ برای خودش واسه شکمش پس تو هم فهمیدی چرا به جمعه چیزی نگفتی؟ قرار نبود چیزی بدونی گفتم یه سری بزن به حالش چطوره؟ جمعه رو کردی واسطه تاره؟ ببین داود دیگه با من این کارو نکنیم شلوغش نکن جامه تو چه مرگته؟ منم تو و خدای هردومو یه چیزی ازت بپرسم بپرس راستشو میگی؟ حرفو تو بزن زنها به چقدر میشنسی؟ علاقه ندارم که بشناسم. حرف تو باور نمیکنه خب من اسرای ندارم قرار بود اینو بدی به خودش خب دادم پس تو چیکار میکنه در نیست که همه چیزو تو بدونی گفتی بهش سر بزن سر سر با من هیچو خیانت نکن جامه جلوقش نکن آقا دادا جامه چه مرگته نمیبینی از منم لفظازی برمیاد ولی احتیاجی ندارم این از خودشه دیگه گرفتم چرا چرا انت نه میدونی یعنی تو نمیفهمی آقا داوود؟ به کنون نقابه صورتت جمعه خوب نیست، به خدا هم خوب نیست بهم، بهم، اونم مالتو چرا انده کجومه؟ ای بابا آدم مردم من آدمم. مردم دست وزر شده ستاکه چرا؟ چرا؟ تو این بلاود که بزنم جاهات بزنم که بزنم با درو دش حرف بزنم که بزنم رو راست باشم حالا روک کراست بهت میگم وست وست شدم تو هم شدی اینا چی خب هم نه بگو نه. اینا نه وست هم وست موندن وست زندگی دنیا من هر روز میکنم مین به روخ افغانی نکش شغلته هر وقت خسله میتونی ولش کنی. چون منت سر بقیه میذاری افغانی از کوچیکش تا پیرش رو مین داره زندگی میکنه رو مین را میره رو مین ازدواج میکنه رو مین زاد و ولد میکنه رو مین میمیره افغانی میره یه جور دیگه میبینه اینا رو تو گفتی نور جان تو گفتی جمعه همسرش رو به خاطر میاره که در لباس سفید با روبنده از تیراندازهای طالبانی فرار میکنه. اونها به سمت همسر جمعه تیراندازی میکنه. جمعه در جوانی نگران صحنه رو نگاه میکنه تا اینکه پای همسرش روی مینی میره و منفجر میشه. جمعه نگران سمت همسر فرشته شدهش میدوئه که خودش هم مورد اصابت گلوله اونها قرار میکنه. واقعا برمی‌گردیم که داوود جمعه رو گرفته و از هپرود بیرونش می کنه. خدا بد درام کرد. میدونی چقدر روی میل خلبدی؟ اون از اینجا بیرونش کند داوود. یا بکشیش. یا اگه خیلی به خودت مطمئنی اونم با ساک جمعه خودشو از دست داوود رها میکنه سراغ دوچرخش میره سوار شده و میره داود کفشهای خودشو در میاره به زمین میندازه درون توفنگش فشنگ میذاره و پابرهنه روی خاک به سمت خونه قدیمی و محبوب میره در بین راه پاش به چیزی میخوره لاک پشته لاک پشت به پشت افتاده رو بر و با اون حرف میزنه بی خود این کار به تو طلبتی نداره راته تو بکش برو لاک پشت رو زمین میذاره و میره در خونه قدیمی رو به شدت میکبه یا بیرون دوستی بخنو یا بیرون محبوبه محبوبه که توری سفید روی سر انداخته و روی پشت بام خونه متروکه نشسته صداش میکنه داوود به سمت محبوبه میره مبارکه اینشالله به سلامتی خب ما هم دعوت میکردی بالاخره حق همسایگی داریم ها من همسایه این دوره بر نمیشناسم چدی؟ عقشت و زخن و مخرب میکفتت من که اومدم تشکر کنم خودت با اون دیوانه بازیت نزشتی سکت اشتباه کردم اشتباه بدیم کردم نباید داد میدادم باهای تو الان تو زمین من بایستی صورتی از این شب یه بیم اتلی اگه نرم اینجا از منطقه نظامیه میتونی بکشی نه بکش بکش تو خونه‌ی خودم بمیرم بهتره تا تو قربت. یا بمیرم؟ اگه سنم بده وقت طلب که درخواست می‌کنی. درس حرف بزن مرد گنده. من لازم توفنگ ندارم. و سی واسه. و همون‌که قفی خلوت اینجا رو بهم ریختی. هر چه تو سر خرته پرت جنگو بیبر بمشو. یالا. فرقه توپ با دشمن چه باشه. اونام که دنبال جنگ همین‌طوری ما کردن. خاصیت اون توفنگت میفهمی. می‌فهمی؟ گونا که داری از خونم بیرونم می‌کنی؟ گناهت. به گمش کردی؟ تو چیکار میکنه؟ دست جومه چی میکرد؟ خودم داده بودم به جومه تخصیر منه که گورشی کمه خوردم با اون مرد چیکار کردی؟ رفت قبرسون نکنه بهت نگفته کدوم گوری زندگی میکنه گشتیش میخواد رسیبت بدم؟ احوازی فهمیدی؟ متوجه نشد؟ با رو گمشو بیوطلی؟ متوجه شدی؟ با توم؟ تو دیدیا برای میدون؟ یا بیرون محبوبه محبوبه از دریچه خراب شده مخروبه به طرف داوود سنگ پرتاب میکنه. من بیرون, بیرون میکنه. برو. برو حسی خاکی به چشممون. تنها شدی. ولی اونی که خاکی خودتی. ما اونو پیدا کرد. چشاتم بزن سری باغت. واسه چی؟ برای اینکه من میگم بیبا. تو بپوش الهی به زمین گرم بخوری دمتون الهی نه چطورتون زمین برداشته بشه الهی بمیری محبوبه گردن بند بر. بردفر دمپایاشو در و جوی داوی بردازه با جورا بیبرپا از داوود دور بشه محبوبه تنها پشت وانت نفکشی نشسته و به پاهای مجروحش رسیدگی میکنه از کنار گورستان تانک ها میزند. ابتدا بی اعتماع. اما بر اتاقک ماشین میکوبه تا بیست محبوبه با جراب های پاره و پاهای مجروح از بین تانک ها به سمت اتاقک جمعه میدون جمعه با ساز خود ساختش در حال نواختن سکی سیاه به محبوب حمله میشه و محبوب ترسان وارد اتاقه که جمعه میشه گفته بودم سگ دلابه ندودی من از سک خور نیستم چرا با برهنه؟ تو همیشه حدیه ای که بزر از کسی میگیری جا حت میبخشی به که این کارو با هیچ سنین نکنی جلوه این سرده تو تو با این پای خونی کجا میخوای بریم برمیگردم همون بار برم این سگو آروم کنی منیر. باشه، تا اول پاته داشته بایی داوود با تو چه کرده ما با توفنگ اومد سراغ نمیخستم از خونه در بیار. این گردم بند نفرین شده سستم کرده این گردم با پیش اون چه کار میکرد؟ چرا جوابامو نمیدی؟ زبون مرده رو وقتی خوبم هم میفهم. بعد بدنامی من برای تو چه فایدی داشتی این رو نمیفهم من چه قصدی نداشتی منکنه میخواستی داود منو با که تانک و سالب بشی حالا مال خودتی اینجورو با ملکیه حالا مال شماست وجب تاینک به داود چیزی گفتی؟ زن داری این تنک برای توی گنج خوشبختی انسیاتم نکن زنداری نه داشتی سالها پیش بزر سریچاش من دارم هدیه میدم من نمیخوام من تو میکنم بریم اگر من همینطوره بیرون کجا میخوای بریم کمکت میکنم برگردی خوند. به من اعتماد کن به هیچ مرد اعتماد نمیکنم حق داری جامعه رو نشنس این فرصت بین بده نمیتونم مخوام جبران کنم باور نمیکنم برای قبلسته ده که خواستی برو مانم سنتا زیاد دیدم اشتباه میکنی من تکم جمعه اگه تمام این تانکا سالم بودن و با من حمله میکردن محال بود یه از این جورابه بهشون بدم من تمام این کارال به احترام روح زنم کردم پشمونم نیستم و تو محبوب خانوم تو هم ساده از حقت نگذر اون مزرعه مال توه به در یدک کشی که پشت دوچرخه جمعه بسته شده نشسته و جمعه دوچرخه رو به سمت مزرعه مطروب می. میرد داود با دقت مشغول خونسا کردن مینیه که یک ساز دهنی رو پیدا میکنه فوتی توی اون میکنه به ناگاه جمعه و محبوبه رو با هم میبینی با سرعت میره و تو رو بر می داره و سمت تازه واردین نشانه میره کفشات رو بکنین سلام بر داوود نبید ناشتیری چی گفتم؟ من قبلا اینجا آمده بود همچین مرسی می ندارد حالا داره من بیشتر از این صبر نمی تو؟ پای زخمی این خانمو دیدی؟ این جون مقدس. اون دیوونه شده. دستاتو بیار پایین. جواب من اومدم تو کلمه باید صحبت کنم. با سازم اومدم. باشه برای بات. الان بهت رو برگردین. محبوبه میخواد بره که جمعه اونو با کلامش نگه می. کن. تو با رفتن داری با اون حق میدی؟ اون حق داره؟ زبونش شده تو فایی من این زبون رو نمیفهم هم محبوبه محض رضای خدا برو خونه. برو اون سوت ملکوتی داوود آقی مردی اصلا با میگه تو زبون آدمی زد سرده حرف بزن برای چی آوردیش؟ تهمت تو به من این خانم تهمت زدی چرا برید شکایت کنید با قاضی تو بیاید من به قاضی چی کار دارم من با سازم اومدم که صداش نقمه صلحه میخوام حرف بزنم تو همون تو کنار بیا با هم حرف بزنی محصر رضای خودات اینجا برگردید من دیگه نمیخوام چیزی پس میخوای با زبون خودت باید حرف بزنم باشه امروز روز مباحله است آقا داوود یا تو بر حقی یا من <تصفيق> بینی؟ نه دادگاهی هست و نه مردمی محبوب است که شاهده و خدا که اون بالا قضاوت میکنه اگه حق با تو باشه جزاش مینیه که بیر زیر پای من ولی اگر تو ناحق باشی آقا داوود به این دادگاه شک نکن باشه بیا این دیوونه بازی من از راسته نیکنه راپا را گرد مگه این زمین مقدسه خب بیا مگه که هر روز وسوسه زندگی رو خنثی میکنم خب بیا میبینی نمیتونی بری من چطور نمیدارم خودمو نصف کنم خودم. خدایا شاهد باشیم بنده ترسوتو ببین چطور فرعونی میکرد ولی حالا مثل موش کور میترسه بهانه میاره بس دیگه! وگرنه میشه. جمعه در مقابل دیدگان مبهوت محبوبه و داوود از ربانهای قرمز عبور میکنه و پا به میدان مین میذاره و چند قدم میداره داود اسلحه رو به زمین میندازه و با عزمی راسخ از روبان قرمز عبور میکنه و پا به میدان مین میذاره جمعه دست از نواختن میکشه و اونو نگاه میکنه داوود قدمی در میدان مین برمیداره محبوب نگران جمعه هم قدمی برمیداره قدمی دیگه از داوود. محبوب دل تو دلش نیست جمعه انقدر انفجار مین و بازیتون تموم شد؟ نابوده مین نابودت دوست داشتی من جای تفنگت بودم؟ چومت رو خوب شناخته معلومه چون چمه آغل آقا داوود کیش مات محبوبه سلر رو روی سر خودش میذاره و به طرف خونه متروکه میره داوود میشینه و رفتن محبوبه رو نظاره میکنه جمعه هم با دوچرخه و یدک میره داوود باز هم به خونسا کردن مین مشغول میشه سی جمعه در راه رفتن صدای انفجاری رو میشنوه برمیگرده و نگاه میکنه محبوبه از توی خونه نگران نگاه میکنه و داوودو میبینه که در کنار دود غلیزی با زانوی مجروح در حال راه رفتنه و یکی دو بار زمین میخوره قصد رفتن میکنه داود چشون کشون روی زمین در معبر روبان قرمز روی زمین میخزه که محبوبه به اون میرسه چه چده؟ محبوبه میخواد زخم داود رو بررسی کنه که داوود اجازه نمیده بذمت کمک کنم اینجا زمین منه هرکس تو زمین من زخمی بشه وظیفا میکنه کمکش کنم من نیست به جا و همه کاراتو میدم. داوود چهار دست و پا به طرف چادرش میره. محبوب اونو هل میده و به زمین میندازه. میخواد زخمشو ببینه اما شلوار داوود در محل زخم پاره نمیشه. محبوب به دنبال وسیله توی چادر میره. داوود سینهخیز سمت چادر میره. محبوب وسیله پیدا نمیکنه. به طرف داوود میره خنجرش رو برمی داره و شلوارشو در محل زخم پاره میکنه زخم وحشتناکی میبینه نمیدونه چم یم کارمون نه اپوس اپوس داوود اصغر اصغر داوود جاتش آب برسونین آب آب آب تو کی هستی؟ چرا تنها کار میکنی؟ محبوبه به چادر میره و قمقمه آب دار بگونیم قم قمقمه خالی. تکونش میده صدای آب می. اما آبی توی قمقونه ناصر آب به شنگارو رو نکنید آب کاظم کاظم کمین باشید آب سنگر بسازید جنگ تموم شده می جنگ سال که تموم شده آب. من برد بخش این دیگه از ای خبران نیست آب. چادرش در میشن کی چتیونه محبوبه میره توی چادر ظرف آب خالیه کوزه آبی پیدا میکنه و خوشحال از چادر بیرون میاد اما اثری از داوود نیست ترسیده و میشینه به ناگاه میبینه چرخ قرقره ربانی روبانی رو که به پای داوود بسته بود در حال حرکته روبان رو میگیره و در امتدادش حرکت میکنه به کانالی میرسه. صدایی پرنده وحشی اونو میترسنه و به داخل کانال میفته محبوبه در ذهنش سحنه های از جنگ تدایی میشه صدای تانک ها. بعدتر تصویری از جوانی داوود تانک هایی که نزدیک میشه محبوبی که در خط مقدم جبه است تصویری از یک شهید ماشینی که منبع آبی را حمل میکنه عکسی شهید دیگه ماشین مورد اصابت توپ قرار میگیره و منفجر میشه عکس دو شهید ماشین داره میسوزه باز هم عکس یک شهید تصویری از داوود که روی زمین نشسته. عکس سه تا شهید. داود از نمای دورتر با دستهایی رو به بالا. عکس چند تا شهید. هم داوود که توی دستش قمقم هست قم و دست دیگهش خالی رو به بالا. عکس سه تا شهید دیگه. داوود چند تا شهید. داوود چند شهید دیگه. داوود چند تا شهید. و محبوبه که بمباران سنگری رو تماشا میکن. درختی آتیش گرفته محبوب داوودو می‌بینه کنار درخت آتیش گرفته میره از پای درخت چشمه‌ای می‌جوشه محبوب عکس چندین رزمنده رو میبینه که در حال برداشتن آب از اون چشمه هستن باور نمی‌کنه اون دروغ اینجا چشمه نداره من اینجا خوب میشناسم اینجا فقط یه چای آب داشت که اونم پرش کردم این دروغ خیلی ربان روبان قرمز در حال چرخیدنه و هیچ روبانی به اون نیست ناگهان محبوبه میبینه که جمعه و به پول گرفته و داره میره به طرفشون میدونه جمعه به سرعت دور میشه و ربان قرمز پای داوود روی زمین کشیده میشه محبوب تنها شده میترسه به اطراف نگاه میکنه قم رو روی زمین میبینه بر میداره تکونش میده صدای ما تعجب میکنه قم قمر رو برمیگردونه و آب قم قمر رو روی خودش می رزه. صدای پرندگان وحشی در نمای از آسمان باز. محبوبه به چوبی تکیه داده و توی خونه متروک خوابیده که صدای اونو بیدار میکنه. بلند میشه و با احتیاط به طرف صدا صام. جمعه است که از اتاقی بیرون میاد و حیری پهن میکنه. جمعه روی پشت بوم میره و چوبهای های پرت میکنه. بخیر این خونه مخروبه است به این دیوارا اعتماد نکنید این خونه جن زده است جن؟ آره حالا <تصفيق> که داوود رفته شما میگی جن زده؟ مرده دوست داشتی مرده باشه؟ نه خب ولی اگه به دادش نرسیده بودید ممکن بود مرده باشه اون دیوونه است چشمه چشمه چه فکرایی تو سرم داشتم گفتم میام خونه رو جارو میکنم قالی ها رو میشورم شیشه ها رو پاک میکنم میشم همون مهم من میخوام از اینجا برم کمکم میکنی از من افغانی چه کاری برمیاد این گنجو بفروش مگه نگفتی این گنج مال منه با تو کمکم نمی نصف این گنج مال تو جمعه ساز دست ساز خودش رو کوچ میکنه و می نمازه. در موسیقی جمعه مشغول بازسازی تانک میشه برفاکونا درست میشه محبوبه برای جمعه چای میاره جمعه محبوبه رو راهنمایی میکنه که لوله تانک حرکت بده نوبت به درون تانک میرسه محبوبه در گوشه نشسته و پولهای پاره و سوراخ به همدیگه میچست کنه جمعه توی باک تانک بنزین میرزه اما انگار آب بوده به محبوبه سود زدن یاد میده محبوبه رخت شستر رو از روی درخت بر میده تعمیر تانک ادامه ده جمعه آچار میخواد اما محبوبه خوابش برده آروم خودش از تو دست محبوبه برد جمعه توی تانک در کنار اسکلت به کارش ادامه میده نرد بومو متبر میکن بیسیم تانک و چک میکنه محبوبه آتیش آماده میکنه برای چار جمعه کار میکنه. محبوبه دو چرخه سواری میکنه و جمعه با جبره های ابزار به سراغ کار دیگه اینکنه سنگ و خاک روی تانکو با همدیگه تمیز میکنه و جمعه که همچنان مینوازه می نوازه و محبوبه با عشق اون نگاه میکنه. حالا غذا آماده شده میخوان در کنار هم غذا بخورن محبوب منترید میکنه و جمعه با عشق نگاهش میکنه زنجیر زنجیر تانکو امتحان میکنه محبوبه علنگوهای خودشو خودش رو در میاره و توی انگشت جمعه میده. محبوبه در خونه رو باز میکنه و جمعه با دو چرخش که هندونه و یه سری وسایل روشه بیرون میاد. محبوبه هندونه میخوره و جمعه نظاره گری. محبوبه تخمه های هندونه رو در میاره و جمعه میخنده. محبوبه دو سیم رو به هم میزنه و جرقه‌ای میزنه. مراحل پایانی آماده سازی تانک انجام میشه جمعه استارت میزنه و تانک با دودی روشن میشه محبوب خوشحال براش کف میزنه جمعه گاز میده و دریجه های هوا به هم میخوره جمعه از کارش راضیه محبوبه به سرعت وارد تانک میشه و کنار جمعه میره حالا تانک حرکت میکنه و محبوبه خوشحال نگاه میکنه تانک از خرابه بیرون میاد. جمعه با سازش از تانک خارج میشه و اونو به محبوبه میده محبوبه میگیره و پریشون توی خونه میره دیگه نمیخوام بمیرم میخوام زنده باشم باشه باشه من فردا این جاده قرمز عریض میکنه بهت قول میدم محبوبه میبینی که چطور جمعه توی میدون مرگ جاده زندگی رو باز میکنه حالا محبوب گریان توی خونه است جمعه در خونه رو باز میکنه محبوب سیمهای ساز و لمس میکنه شب شده محبوبه تنها روی تانک نشسته و پارچه قرمز روی سرش میندازه از دور سایه میبینه به چادر داوود میره لاک پشت توی چادر کف چادر گودالی هست صدای از اون شنیده میشه با ترس و احتیاط به کمک فانوسی از پله ها پایین میره تونلی تاریک اونجاست توی تونل حرکت میکنه صدای کند کاری میاد نقش نامفهوم روی دیوار میبینه درخت نخلی روی دیوار کنده شده صدای کندن همچنان میاد و بیشتر میشه داوود با ریش و موی اصلاح شده در انتهای تونل مشغول کندن چیزیه محبوب بهش نزدیک میشه داود دست از کار برمیداره. داوود فانوسی برمیداره و میره. داوود میره و در تاریکیتونه گم میشه. محبوب فقط به رفتن اون نگاه میکنه محبوبه با فانوس به نقشی که داوود مشغول کندن بود نگاه میکنه. نقش زنیه با همون گردن بند قابعکس دار انگار خودشه. جا میخوره کمی عقب میره نالان و گریان قصد خروج میکنه که زمین میخوره محبوبه از گودال بیرون میاد و داود رو میبینه که زانو در بغل منتظرش نشسته هر دو به هم نگاه میکنن گفته بودیم نمیانی آ خوب شدی آره آره بهتر شدم اینجا دیگه بومبست برگشتی برگشتم من آره آره یه کار نیمه تموم داشتم کاراتونو بکنی اینجا هواش سنگینه بتره بری بیروم. برو اینجا هنوز زمین من میدونم اینجا خونته خونه بچه گید خونه بابات من امشب اینجا را میدم برو فقط فقط بزر کارمو تمام کنم به کارت برس خواهش میکنم شما به کارتون برسیم باشه فقط یادت باشه خودت خاصی. محبوبه از چادر بیرون میره داودم از چادر خارج میشه لنگان لنگان حرکت میکنه توفنگ کوچیکی رو به طرف محبوبه که در تاریکی شب در حال دور شدن نشونه میره داوود شلیک میکنه که در کنار محبوبه به تپهی برخورد میکنه روز شده در دورستان تانک ها جمعه با سگ سیاه خودش بازی میکنه گویی ودا میکنه سگ به جای بسته شده جمعه از سگ دور میشه و سراغ دوچرخش میره سوار میشه و دور میشه داود جلوی چادرش ایستاده ریسه های منگولدار رو جمع می که جمعه با دو چرخه به اون میرسه رسه داود ریسه های جمع شده رو دوره گردن جمعه میندازه. کی برگشتی؟ دیشب تو الان کجا میری؟ این راهی که تو درست کردی فقط به خونه محبوبه ختم میشه. منم بیان کمک نه کار زیادی نیست تو استراحت کن اینم هم هدیه ی <تصفح> عروسی؟ اون که زن من نیست که یعنی خواستگاری نکردی؟ خب نه بس بکن <تصفح> بسی کی؟ برای من؟ شوخی میکنی؟ جدی میگم برام اون خواستگاریش کن <تصفح> چرا خودت خواستگاری نمیکنی؟ نمیتونم چرا؟ اگه قرار نه بگه بتر زبون تو بشنفم <تصفح> باشه باشه محبوبه میخواد خونش رو تعمیر کنه برای اینکه مساله به خونش برسته تو هم این جاده رو دریزش کن به اندازه کامیون من دیگه دستمی نمیزنم جمعه به سمت خونه محبوبه میره نه نه؟ آره؟ نه چرا؟ داود که آدم خوبیه جمعه من نمیفهمم تو برای چی برگشتی این خونه جز برای گذشته خب داودم متعلق به گذشته است اصلا خودشو نگهبان گذشته میدونه و هم خوشبخت میشیم. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم میفهمی تو شده جمع اون از اینجا نمیره تو هم از اینجا نمیری چه کسی از اون بهتر اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی میزنم بکن محض رضای خدا خوب فکر کن بعد جواب بده جواب تو از داوودم برای من مهمتره من فکرامو کردم نه نه نه بله نه جمعه جلوی در خونه به داود توضیح میده خیلی اصرار کردم دلیلشو بگه ولی نگفت سب کن حالا تو اونو برام خواستگاری کن برای تو من؟ من همین کار رو برای تو کردم داری حسیت میکنی شما. من همه یه زورم رو زدم که اون جواب تو رو بله بده حالا توقع دارم منو محافظم کن تو خودت بهتر میتونی <تصفح> میدونستم از تو بر نمیاد خیلی خوب حالا که نمیتونی دست بمین بزنی به من یاد بده چجوری خونساشون کنه این کارا تو نیست نفر بعدی که اومد بهش سفارش میکنم این انجام بده داوود با ساکی از چادر بیرون میاد و دیرک سایبون اونو میندازه و میره من اگه جای اون بودم الان برمیگشتم اون ساکمو میذاشتم رو زمین به نظر میرسه جمعه و محبوبه‌ نظارهگر اونه معلوم خوب نشنخته ایش. الان یه راست بر بگشتم شروع میکردن به خونسا کردن مینای جادی. ولی من فکر میکنم اون الان دستشو بلند میکنه شما همه تون همیتونی اون اگه کلاش هم بیفته این طرف و دیگه بر نمیگرده که برش داره. انبار نمیگرد. اصر چی؟ جواب این سار داسونه است. خیلی خوب آماده باش. جمعه با صورتی روغنی توی تانک مشغول کاریه تا اونو آماده کنه لولای در خونه صدا میده جمعه ترسان میره در باز میده محبوبه کنار در چمبات مزده خسته نباشی کار دیگه ای نداری؟ نه باز فراموش کردیم محبوب خانم تو من کجا دارم میرم؟ میخوام این تانک رو ببرم لب جاده تو مغازه بفروشم؟ پس اصلا میدونی من چی کار میخوام بکنم؟ درخ داره یا باید تانک رو کنم به قیمت پاره بفروشم که گیره تو چیزی نمیاد و یا اینکه که صحیح و سالم بدم به صاحبش که صد برابر آره. میارزه میفروشیمش به اصای همین اسکلت آره همین اسکلت کلی زحمت کشدم باشه صحبت کردم. آره، مرا این کشور دیگه. این حرفا دروغ نیست محبوبه. دروغ نیست. من آیندم. آینده برای خوشبختی تو. کدوم کشور؟ افغانستان، ایران، ترکیه، عربستان، پاکستان، کجا؟ من این خط کشی‌ها رو قبول ندارم. من خودت کجایی هستی؟ یارو هیچ فکری وقتی یارو با یه یا افغانی ازدواج بکنه؟ بچه‌شون وقتی بزرگ بشه با هیچ کدوم از این رگه شوخیان محبوبه. اگه با سالتی سی کیلومتر بریم خب میرسیم لبه مرز تازه از اونجایی که من میرم هیچ کس ما نمیبینه محبوب؟ تو به این فکر کن که جمعه کیسه برای این تانی ندخته. همش همش محبوب است. همش من این خطر رو به جون خریدم لعنت به جمعه اگه نمیای آی لاقل آرزو ما برآورده کن داوود خسته همچنان میم خونسا میکنه با پای مجروحش حرکت میکنه و سیم های خاردار رو با چوبی بلند میکنه منطقه پاکسازی شده وسعت پیدا میکنه جمعه وساله روی تانک اومده داوود به ساک و کتش میرسه که میبینه لاک‌پوش روی اون نشسته باهاش حرف میزنه برو برو برو گوش نمیدیم ات چی میگم یادت باشه خودت خاصی. ایف که تو این چیزا رو نمیفهمی برو برش میداره میخواد لاک پشت رو پرت کنه اما منصرف میشه پشت دست و پا میزنه زمین میزنه کتشون رو جمعه با همون ریسه ها تانک رو میکنه محبوبه خودش رو به سبک زنای جنوبی بزک میکنه جمعه سر بلند میکنه و محبوبه رو در لباس عروسی میبینه به طرفش میره اما زن دیگه هم در خیالش پشت سر اون میبینه تانک میره و کلاشو سرش میذاره. از تانک بالا میره. محبوبه در رو باز میکنه. داوود پشت در ساک در دست ایستاده. لحظه درنگ میکنه و به خونه برمیگرده. تانک روشن میشه. داوود به لباس سفید محبوبه و تانک آزین بسته نگاه میکنه. جمعه سر از تانک بیرون میاره و داوودو میبینه. داوود آروم وارد خونه میشه. محبوبه سر بزیر و داوود به ریشه ها دست میزنه و یکی از منغول ها رو عصبی میکنه یکی دیگه میکنه داوود در دولنگه بزرگ خونه رو میبنده و در کوچیکی رو باز میکنه جمعه از تانک پایین میپره و به طرف داوود میره در دولنگه رو باز میکنه کاش برای خدافسی نیاماده بودم من که گفته بودم یه تانک پیدا کردم گفتی مال خودت یادت هست؟ داوود آقا وقت خوبی رسیدن داشتیم آماده می شدیم بریم پیش یه آقد. نه چرا؟ اتفاقا یه شاهد لازم داشتیم جمعه بلند شده داود از پشت میگیره و پرت میکنه. درگیری بالا میگیره محبوب مخموم فقط نگاه حالا از در بیرون می گره. جمعه و داوود خاکالود و کمی زخمی به نزا پایان میدن شیشه عینک جمعه شکسته سر داوود زخمی شده داوود دوباره جمعه رو از پشت میگیره اما جمعه داود و زمین میدازه یه بر بودی این قصه صفحه آخرش بود. جمعه سوار تانک میشه روشنش میکنه و حرکت میکنه داوود بیحال رفتن تانک رو میبینه تانک از دروازه خونه رد میشه بیرون خونه تانک نیست جمعه از اون بیرون میاد و نگاه میکنه محبوبه رو میبینه که تمام ربانهای قرمز رو جمع کرده و دیگه محدوده میدان مین و منطقه پاکسازی شده معلومی است دور تا دور محبوبه ربان قرمز پیچیده شده محبوبه محبوبه جمعه مستصل توی تانک میره داوود از زمین بلند میشه و بیرمق میخواد از خونه بیرون بره تانک توی مزرعه به طرف محبوبه حرکت میکنه محبوبه نگران اینه که نکنه تانک روی مین بره. به سرعت خودشو جمع جور میکنه داوود به در خونه رسیده تانک حرکت میکنه از روی یه مین زد نفر رد میشه و مین مفرد محبوب حیران نگاه میکنه داوود به طرف تانک حرکت میکنه که ناگهان جمعه از پشت اونو میگیره. تانک به طرف چادر داوود در حرکته. داوود میخواد جلوی تانک رو بگیره. جم مانعش میشه. باز هم تانک در حرکته. داوود میخواد به طرف چادر بره که جمعه سفتتر اونو میگیره تانک به چادر رو روی چادر میره و اونو له میکنه داوود ناراحته و لحظه این بعد منورهای توی چادرم هم همه شلیک میشن و به هوا میرن عرضه فقط نظارگر این سحنه تانک آزین بسته شده داره نیست محبوبه به طرف تانک میره و پای زنجیر اون میدیده داون هم با پای لنگ به طرف محبوبه میره چیز عجیبی دیده در کنار زنجیرهای تانک چشمی در حال جوشیدنه صدای افتادن چیزی در آن بلاک پشت رو میبینیم که شناکنان وارد همون تونلی میشه که داوود کنده بود و حالا به نقش زن کنده شده روی دیوار میرس <تصفيق> عزیزان شنونده شما... فیلم سینمایی روبان قرمز رو شنیدید به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم هاتمی کیا اما عزیزانی که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردند خدمت شما معرفی می‌کنم صدا بردار خوب برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی و تهیه کننده محترم فرشاد آذر میاد و بنده هم که در خدمت شما بودم بهرام سرورینژو تا برنامه دیگه خدا خدانه